دیریست که صد هزار ایسا دیده است، توریست که صد هزار موسی دیده است، قصریست که صد هزار قیصر بگذاشت، تاقیست که ست هزار کسرا دیده است سی مرچه نمایه است، وی سیمان را باغ جهان زندان است، از دست توهی به نفشه سربرزانوست و از کیسه زر دهان گل خندان است بس خون کسان که چرخ بیباک بریخت بس گل که برآمد از گل و پاک بریخت بر حسن و جبانیی پسر قره مشو بس خونچه ناشکفته بر خاک بریخت جز حق حکمی که حکم را شاید نیست هستی که ز حکم او بروناید نیست هر چیز که هست آنچنان میباید آنچیز که آنچنان نمیباید نیست